یک مرد بزرگ روحانی روزی به من گفت خدا همان عشق است و همان عدت فهمیدنی نیست احساس کردنی است امروز این سشنبه من بسیار جدی دست راستم را طوری میگیرم که گویی دست گلی در دست دارم جدی با احتیاط تو نگاه میکنی و لبخند میزنیم بچه ها سلام امروز ما پول نداشتیم برای یک دسته گل بزرگ از باغ خیال آورده ایم دفعه دیگرم ما دست پر می آییم. امروز باید قدری قانع باشید قانع به همین گلها دست گل را از دست راست به دست چپ می دهم یک گل از لای دست بیرون می کشم و به بیمار اولین تخت تعارف می کنم. برای تو عزیز من. گلی به هر رنگی که بخواهی و با هر شکلی که بخواهی. دخترک نگاه می کند. هنوز قصه را نگرفته است. دستم را خالی خالی می بیند. مات دستهای خالی را میپاید. خواهش می کنم بگیر دخترم. دخترک با تردید دست دراز می کند. فضا را بد می گیرد. اگر گل بود بر زمین افتاده بود. بعد دستش را باز می کند و لبخند میزند. زند. اصل آهسته میگوید افتاد روی شمدت نفر دوم حالا آماده تر است. بازی را فهمیده. یک شاخه گل را با لبخند می گیرد. می ممنون آقا آن را می و با لطف و محبت در گلدان بالای سرش میگذارد. باز میخندد، اصل میخندد، عجب اطری دارد. مرد که من باشم، که ممکن است من باشم، میخندد. پرستار در آستانه در میخندد. تفلسم باز هم تیزتر است. یا آرام آرام یاد گرفته است که چگونه باید بود؟ گل را برمیگیرد. عمیق می, می بویید میگوید به عجب بویی دارد. من هیچ وقت گلی با این بو و به این رنگ ندیده بودم. ممنون و آهسته برمیخیزد. گل را با یک دست نگه میدارد. با دست دیگر. همچونان از تخت پایین میآید گلدان سفال کوچکش را برمیدارد و خودش را میرساند به کنار دستشویی. دیگر هیچ کس نمی خندد. بازی کاملا جدی است. اتر گل اتاق را پر کرده است. پسرک که چه صورت خوبی هم دارد حال جلوی دستشویی در یک دست گل را دارد در دست دیگر گلدان را. مانده است که شیر آب را چگونه باز کند و گلدان را آب. تو با شتاب خودت را به او می رسانی. گل را بده به من. پسرک گل را با ملاحت به دستت میدهد. هیچکس نمی خندد. بازی بیش از همیشه جدیست. اتر غریب گلها پرستار دوم را به جلوی اتاق می کشد. سکوت اتر سکوت گل. مه خیالی نیست واقعیت پرشکوه رؤیاست پسرک آب مانده در گلدانش را خالی میکند آب در گلدانش می ریزد ساقه گل را میگیرد میگذارد در گلدان میبوید باز میگردد نرم میپرسم گل تو اسمش چیست گل سرخ رنگش سرخ چه گل سرخی قنچه است اما خیلی میماند تا هفته بعد تا صد سال تا رؤیا زنده است تا انسان رؤیا را دوست دارد بچه دوم فریاد زنان میگوید من گل نرگس دارم آه بانو آن دست گل نرگس مرطوب کنار پل در مه کاملا واقعی خوش بود میبینی مه مصنوع نمیخواهد مه اگر بود ما بچه ها را هیچ نمیدیدیم مه اگر بود آن طبیبانی را که به درد بچه ها نمیرسند تا بچه ها پرپرزنان بمیرند هم نمیدیدیم نعمتی بود خودش نبود درد باقی میماند مرگ هم بچه ها قمگین تر میمردند خب بحث نکن الباقی گلهای خیال را میگذارم در گلدان بزرگی که روی زمین است و خیلی هم زشت انگار که ما مردم یادمان رفته که هیچ گلدانی به زیبایی گلدان سفال آبی لال جین ما نیست آقا ما میخواهیم باز هم از همان ظرفهای سفالی آبی فیروزهای بسازیم اما دیگر لاجورد اصل پیدا می شود اصل اصل دولت باید لاجورد خوب را برای ما وارد کند لعاب ناب ماندگار و الا بعد از این گمبت های مسجد ها هم ای خواهند شد و دیگر گمبت ها پولیمیان انسان و خدا نخواهند بود تیغ یک گل گل سرخ خیال سرخ می رود در دستم می گویم آخ و باز زحمت بیرونش میکشم خلاص همه میخندند باز هم میخندند من میفهمم که اگر بازی را دنبال کنم روز خوبی خواهد شد مرد به همسرش میگوید بنشین و خود نیز روی چارپای خیال مینشیند ها ریسه میروند مرد میگوید من و خانم این بانوی جوان، هر دو من کارگریم، در خانه های مردم کار میکنیم، یا در مهد کودک ها. یا در خانه خودمان باز هم برای مردم. البته کتاب کهنه هم میفروشیم. ما یک پسر داریم تقریبا همسن شما، و یک دختر قد یک عروسک. بانو، راستی یادت باشد چند تا از آن عروسک‌های ایرانی هم درست کنی و برای این بچه‌ها بیاوری چشم همسرم این بانوی جوان اهل آذربایجان است به قندان میگوید گندان و به غروب میگوید غروب من لهجه آذریش را دوست دارم یک روز اگر یاد بگیرد که به قندان بگوید گندان دیگر بانوی آذری من نیست. همه اینها را آن دفعه هم گفته بودید آقا. آه آه بله. من از آن شاگرد مدرسه هستم که درسم را توتیوار یاد می‌گیرم. آن دفعه اما پسری اینجا بود که حالا نیست. دختری هست که آن وقت نبود. راست می گویید آقا. حالا بگویید که خانم خوشکل شما، قرقروت و قنداق و قوری چه میگویند و صدای آواز خروس را چگونه تقلید می کنند البته اگر بدشان نمی آید، چرا بدم بیاید دخترم داشتن لهجه که گناه نیست گناهکاران باید شرمسار سار باشند نه لهجه داران اما تو هم یک حق باز به تمام معنی هستی ها بچه‌ها می خندند قهوه به شیرینی لبخند میزند، پرستاران دوتا شدند، مأمور نظافت هم از راه رسیده است، اصل میگوید آن دفعه شوهرم همین آقا، گفت که من آذری هستم، اما من نگفتم که او اهل گیلان است، گفتم نه، پس حالا شما بگویید که شوهرتان به قرق و, و قنداق و واقعندون چه میگوید تو واقعا حق بازی دختر اما راستش من نمیتونم تقلید حرف زدن او را در بیاورم میتره قربان بگردم الهی یعنی چه یعنی خیلی دوستتان دارم خانو همیشه به دیدن ما بیایید با گل واقعی یا خیالی فرق نمیکند با آب نبات یا بی آب نبات هم فرق نمیکند آنچه ما را اینجا خیلی عذیت می کند است خانم میگویم سه نفر آدم در کنار هم باز هم تنها تو چه حرفها میزنی دختر مهری فردا گمانم مرخص می شود حالش خوب است می رود که باز قاری به بافد فاطمه هم یک روز شاید برود فقط میدانید باز عشق راه بندان بزرگ گذرگاه روح برویم سفره را جای دگر پهن کنیم بیاز ماهی. زیان نخواهی دید فقط بچه ها هستند که روح ما را به بلوری نازکتر و نرم تر از بخار روی شیشه پنجره های زمستانی تبدیل می کنند که مختصری حرارت می تواند آن را به قطرهای عشق جاری مبدل کند و فقط با چنان روحیست که می توانی عشق را به عمق اقیانوس ادراک کنی و تنها در پناه چنین ادراکی است، که قادری در بیزمانی و بیتاریخی پویایی زندگی را دریابی